الحمد لله رب العالمين و صل الله عالمين و جمع او و جمع و و فائدم زهره به خلافه جمع و تمییز و قائل سهل خلاف و اشتر جمع و پرو. و جمع و اضافه شده به تمییز تمییز و قائل اکت به جای تمییز زحاره سے ضمیر کو جمله فاعل جملہ جمله نکره به قدش تھارہ ضمیر غائب فاعلش به جمله جمعه قدشت هره انقوم جمعه برداز نکره خلاف میشه چی؟ چی میگه؟ میگه اگر ما یک فائل ظاهر داشته باشیم از این اقسامی که بکنیم مثلا نه مرد رجو آن بیشه تنیزم بیاریم یعنی بگیم نه مرد رجولا رجولا جمع و تنگیزم وفاق زهر چم پویی چم کردن بین تنگیز وفاقی که اسم زاهر داره بگیم نه من بچه رو در شدم. میگه در این چم کردن در این کلام بیه خدا در این مدد چیه؟ اختلام یعنی ادهی قبول کردن ادهی قبول نکنن خلافون قدشتر است که شهرت یافته هست از نمینا یعنی خلافیه که بالا گرفته مشغوله. یه اده بزرستم یه در بیره خلافون باز نظر آقای ابن ماده در اینجا معلوم نشد نظر کرد گفت چهر به اسم و تمیز مورد اختلافه همین بیگه نه من میگم جمع درست یا من میگم جم مدر توقف کرد و جمع اون و جم اون و اینه تنگیزه و مفاعل زهر که زهر شده که نئمن و جلو رجولن نئمن و جلو رجولن مثلا زیدون که زیدون هم میرونستی مخصوصه به من. مثلا فیره خلاقون اون ویدیو به عنوان بصر زد. فرغان سیبدی و به توی این دو عنوان کردن که صدیق نیست گفتن چون هیچونه افغامی نیست تمیز رو میارن برای چی؟ برای رفت افغام چه افغامی دو این کلمه نه من رجال است؟ همون رجال خب معلوله دیگه رجالن چی رو میارد در در افغام کنه؟ تمیز برای رفت افغامی نیست و اینجا صدیق نیست چرا چون افغامی وجود؟ نه اول من لستقناهد فائده به ضرورهی ادف انت تمیز مبینهد به خاطر مستنمی بودن باید بینیاز بودن وارد، به طبق ظاهر بودنش حالا اون قبلی که زمیر بود و زمیر مستدر بود دیده نمی شد باید یه چیزی می آمدید مهم بود اینجا که دیگه سوزاره به ظهور میعن تمیز مبنگی ندر از تمیزی که مبنگی ماشه برای بود از تمیز مبنگی بینیازه چون افاقی بود هره تمیز ار موبر یه یعنی که بیا رو کنه موبر باشه می ور موبر در دو از جای سی ویه وزه ار موبر در دو ادر جواز به سوی جواز درسته وقتا رفون مصنف و, و مصنف هم این رو اختیار کرده نه دو این کتاب ها دو این خدا توقفت داشت یعنی نگفت درست نگفت قرده گفت و جمع و تمهیزن و فایلن زر تیه اطلاق کنن و همون قرد اختیار کرده قول مبذل رو که چهاره سونسته جناب آی مصنف بعد خب باید یاد توجیح کنه چه دو تمیز اومده اینجا با اونکه ما نیاز نداری میگه قارن لعنه تمیز قرد یجا رو بهی میگه گاری اوقات تمیز برای چی میاد؟ تحکید میان همیشه که تمیز برای لبه اپهام نیست که تو اینجا قام نیست پس تمیز قرار نه تمیز برای تحکید میاد لعنه تمیز قرد یجا رو بهی توکیدن سلام. همانطور که قبل این تو باره تمیز تو سیوتی یک شما دیدید که تمیز توکیدی هم داشت دراز قد بجا رو کما و من ها قولو بگیم آقایی مادردشو مثال بزن بگه و من ها قولو از همین هست قول موزنه قول شارع از تبد بی یونن که این موارد تمیز اومده با انبال چی؟ تحکیم و من مقومه از تقلیبی جونه به بی اصن فهنو فهنو همو فهنن و اون مقوم زنلا و منتیق و تقلیبی جون از تقلیبی جون محتلی است مثل فهن و فهن و همون فهن این جمله خبر یک تبلیویونه حالا اگر شما اجازه ندید جمله این شایی خبر باقی قرار است. اگر اجازه نمیدید جمله این شایی خبر باشد باید به تبدیل چی گره؟ ماده بود بگیم از تبلیویون محولان فیهن به اصال فهلو فهلو هم فهلو به اصال از افعال زن الفهلو چیه؟ فاهل شون فهلو به زن میشه که خودش دوتا ترکیب داره یا مقتدار معخر به اصال فهل یا خبر سر مقتداری واجبه هست الان ما به اصال فهلو الفهل فاهل ظاهره فهلو آخر چی اومده؟ تمیزون. میگه جمع کرده بین این تمیز و به این فائل میگه تقریبی ها چه بدن مردانشون از فرد فرد یعنی نه منظور اینجا مردانشونه مردان اونها چه بدن به سر فحلو و مردان اونها جز بدلی مرد هستن از جهت مردی و هم هم و, هم و مادرهای اونها زمان اونها زلاغ لاغر منطیقه بسیار لاغرن و منطیقه منطیق اونهایی که زیر دباسشون چیزی میگذاشتن تا اینکه که دیده علیه بشن میکره کسانی از لاغری نوعی لباس میگوشن که دارای به قول معروض اشیاء زیری نیست که اونها رو چارجیم بده و اون مهم زلاغ رو تولیش نمتیق صفت زنده درود این جمله هم عرب شده به جای جمله اول ات به اصلافه فرقه فرقه بود که ما فرقه و عنوان تمیز با اسم زالد و از مواردی که گفته شده همین و با رو و یکی هم این شعره که میگه حضرت عبو طالب پدر آمین المومدین این شعر رو گفته و شاید این شعر که در مجامه شعریه اهل سنت مشهور هست و معروف واقعا این رو اصبار میکنه که حضرت عبو مسلم بوده و به معتقد. برکشم معتقی اهل سنت وقتی زورشون به اسلام آقا همی رو موینه نرسید بعضا اومدن این توتر رو بلند کردن بعضی از اون که از فکرهاشون و این که امو کافر از دنیا رد و صورت که این شعر رو نگاه کنید نقوله یکی از آقایون مگفت عجیب است که شما کسی رو که میگه ناخبر اون جا هست ولا وحیون نزد نه خبر اومده نه نا نازد شده لعبت هاشم و بلمور که فلان خبر اون جا و ولا وحیون نزد اون رو نهیه مسلمان همه کسی که این شعر رو گفتنه میگه چه کاریه این شعر که حالا به میزنه نه برای خاطر اینه که تو باب نیم و تمیز اومده برای تاکید با اسم ظاهر خواهر بلکه مثال میزنه برای چی؟ تمیزه بگید تحکیبی لقد علم تو به اندین محمده من خیر اندیان ارواییت دینن لقد با جواب فصل علم تو فرخ فارز به آننا متعلق به عالم تو یعنی تا تو به آننا یادین به آننا بین که دین محمدین دین محمد من خیل ادیان البریت من خیر دین محمدین اسم آننا من خیل, خیل قرارش خیل اضافه شده و ادیان عدیان البریت من خیر ادیان البریت دینند این دینن آخری که شما میارید آیا مگر این نمی مهم بود دین مهمت ثابت موجودون من خیل عدیانه بریگه دین مهمت میواشد از بهترین عدیانه بریگه خب چه چه بهترین نشه شد خب محلومت جده دین بودن بهتر از همهان است. مثلا واضحه مخصوصا با کلمه من خیل عدیانه بریگه دیگه اون دینه آخر مده به عنوان چی؟ ترکیم چون هیچ کنه اقامی توی جمله از اینجا منظور کردی تمیزه تأکیدی داریم یا نه یعنی تو یعنی این بیت قبول کردی که ما تمیزه تأکیدی داریم وقتی تو این بیت قبول کردی تمیزه تأکیدی داریم خود چرا تو باب نعماوزه رو نمی‌گویند تو باب نعماوزه تمیزه تأکیدی ممکنه بیا بگیم چی به اثر فهلو فهلو فنه به اثر رجولو رجولو اصل و فهنو خبو فهنن فهنن تمیز است به دلیل قوله این که تمیز تحکیدی رو ثابت افنه شام تمیز تحکیدی رو در باب رابع نمی و من توی باب تمیز این مطلب رو برای شما گفتم و هاشی هم دارید برگردید و ما مومد و ما ممیزون و قیر فاهرون و ما ممیزون و قیر فاهرون فی نحن نعمه ما فا یقولون فازلون نعمه بعدیش ما میاد و دو جور هم بعد از این نعمه ما میاد یعنی ما نعمه ما یا به تا که به دو دوتا میم رو که بخواهی اتخاب بکنیم مجبور میشیم چیکار کنیم اتغای ساکنه میشه کس بدیم بگیم چی؟ نئم ما و به اصم بعد از این دو تا کلمه دو جور دیده شده یکی که بعدش جمله اومده ها مثلا به اصم ما اشتراوهی امفوزا گاهی وقت‌ها مفرد میاد مثل دو سلقات ام تو تو سلاقات فن اما ما میاد منفردش امروز حالا این چیست آیا واجد است یا تمیز است به معنای شیء است میگه و ما ممیزون ما چیه ممیز است ما ممیزون و غیره بگید واجد گیری گفته چیه؟ فارغ یعنی ابن مالک این دو خوبی رو نفذ گفته نظرش رو افری بوده با اون که اختلاف بوده اینجا اختلاف رو من طرفی که رو میگیرم خود من میگم ما تمیز است، نجر است. و ما ممیزون وقیر فارغ در کجا؟ فی نه به نعم ما یعولو فازلو نعم ما یعولو الفازلو نعمه ما یکولو الفاظ میدیم واقع و آتفه ما مبتدا هم ما منگزان خبرش واقع و آتفه قیلت فائل بوده حوکت فائلان یا حوکت منظور به ما برگرده یا قیلت ما فائلان نشد فائل خبر یک خوبه مقدر یا خبر مای مقدر مبتدار و جمعش محبوله و نایب فاید همونطور که محبول مایده نمیتونه مفرد باشه همون محبول میشه نایب فاید نایب فایدش هم نمیشه. و ازادی در ازبول لا تفسدوف الارز لا تفسدوف الارز میشه محبوله اینجا نایب فاید فی نهوه یعنی ثابتت فی نهوه حال از برای ما حال از برای ما ما ممیزون و پیل خوبه در کجا فی نهوه فی نهوه یعنی ثابتت هم فی نهوه حال از برای ما، مای مبتدا حال از برای مبتدا فی درجه نرب اضافه شده به جمله نه و ما یهو راض یعنی فی نرب و راض مثال این از شهاده مفرد شده یعنی راض مثال در مانند این مثال نه من فعل عربی آن را ترکیب داخل شد نه نه ناف ذمیر فاعلش و ما تمییزش و یبول الفازل به لو فاعل نعت برای ما جمله بعد از نکره میشه چه سفر دیگه نعما ما جمله بعد از نکره سفر نه برای ما معاربش هم رابطش هم طرح شده یعنی نعما ما یبول لهو الفازل این جمله سفر صفت مسند محسوس رو هم بگید کرد. پس چه جور تأکید چون نعره ضمیر رجید فاعل است. چون ضمیر به جای متأخر لفظی و رکوی هم است. ما به معنای شیئا تمیزش. یبول الفاضل و فربه این جمله صفت ما و نیاز رابط داره. پس یبول و هو بوده. یبول و هو این جمله که میاد دیگه جای مخصوص به ما چی کار بکنه پر بکنه مثل فائد که سطح مصطح خبر رو میکنه در مرتبای وصفی اصال نیزانه اینجا مرمانون داره جمله سفر سطح مصطح ببکید محسوس بکنه دیگه محسوس نیاز نیست ذکرم نمیشه نه ما یعونه و الفاظ زی چون حالا بیرد پایی میبینیمید چطور میتونیم هر کنشون و ما با من یه زن اند از و اکثر و کثیر مند متاخرین ما تمیز است نزد آقای زمخشری و عده زیادی از متاخرین یعنی این هایی در بعد شما افتوم از نهری ها بودن از متاخرین این ها ما اگر تمیز باشه نوع تمیزیه؟ میگه فریعا نکره تو موصوف پس این نکره موصوف است نکره موصوف نکره یعنی شیهند موصوف اتونی بعد اتون میاد. پس این ما نکره تو موصوف اتون باید نمیسیم نکره موصوف اتون زمان که ما بعدش این باشد که سر به مخصوص را هم کنم سر به مخصوص را هم کنم و چنان چه موابط است مفرد باشد و چنان چه موابط باشه؟ باشد مفرد مثل چی بود؟ این دو دو سباهای باشد که این ما نکره ای تام است این ما نکره ای تام است و مخصوص به مع یا این که اینکه بو تفری انکرت موجود با اون موقعیتی که چی باشه مثلا نعمان اون در حاضر باشه این به معلم منصول سفر فسد به مسد محسوس مخصوص There is one out as many of usessions a کی آقای جمهور هم این دنوانده به تاریخ سایزدین ذهن تو میستن و دیره دیگه اگه گفت این گیل کی بوده میگه ای آقای سیبده وقت آقای سیبده وقت خروف گفتن که بزرگی هم هستن یه آقای دیگه یه گذاشت که بگه فایده بتونه معموله بشه آه است مزاج جمعه بعد از اون سر و از مخصوصه به مردی و یعنی اون موقع این آرون سیده رو به اون جمعه به ها اشتراه چطور تردیب میکنن؟ میگن به اصف به چی, چی زنی ما و معنی ما بودیم به معنای شهران منظور همه میگم چی؟ مرگون موضوع به معنی اندازی پارو اشتران دیگه انفرس همون میشه چی؟ سره ها اونهای بهی دیگه ها سره هست آیه سره است و سره هست هم به مصد مخصوص این ترکیب این آیه به معنی اندازی و سره هم مخصوص مخصوصه بره نه, نه؟ حالا تانمتن افران میشه چی کنون افران ها بله اما بید چکر درکیت بکنن میگرد نعمه روی از ما به معنی عشق ما ما این معرفه به اشی عشق تاییش مخصوصه بره مخصوصه حالا یا نما خبر با یا بگو ما قائل اون یا خبر از برای یک محتقایی ما چه بارم؟ نمازم نمازم نقضا بینه در مانند قوله جنابانی دلوش شد میگه در مانند یک مثال نمازم یک قوله بازده اینجا که بعدش جلبه است به صدقات فلیه ماهی هم. این بردش چیه؟ چون که قلوبه نمیتونست شاهد مثال باشه این شاهد مثال قرآن که چون در چیه؟ به صناعش ام همفزان یکیش درست فکیش فکی یکی مرده یکی برده. یکی بردش مفرد یکی بردش جمعه ما برابر, اکیبه. برابر کردیم تکیب به سماه اشتراویی هم پسان میگه مادر مصنفه بیشهر در کافیته مادر یعنی چی؟ تمامیان رو بکرمه مادر مصنفه بیشهر به کافیته الان ترجیح به نام سامی مادر یعنی تمامیان پیدا کرده کشفت پیدا کرده مصنفه به مادر کتاب شهر به کافیه به سوی اینکه ترجیح داده خوده دو بوم رو کدوم رو وقتی در بایدون تویی که ما ترجیح رو کدوم داده ترجیح رو داد و معاملی زنده ده قوله اطلاع تنیز گرفته قول زمعشانی متاخلی رو گرفته و قوله های سیرافی و از متقدمی رو بگید گذاشته کنا بنابرای موقع که با ما معامل زنده و بیشهر کافیه با ترجیر رو رو ترکیم میگه مخصوصه به من داره یا مرتبای محرد جمله برای خبر محرد یا نه خودش خبر برای مرتبای مرتبای محرد منیور مخصوصه به هر دور مرتبا او خبر اسم از افعال ناقصه زمین اسم اسمش یه اسم فاقلش اولا زند مطابقه یه دو جمعه دو اولا خبر دعیسته خود نکونه اولا صفت برای اسم جمعه برهز نکره میشه چی؟ میشه می میشه بعد از این دوتا خورمان مختلا در حالی که یا در حالی که خبر اسم ایست یعنی مبتدار است، که هرگز ظاهر نمیشه یعنی بازه بود به گل کنی و یک کلم مخصوصو به مده زند میشوند مخصوصه به مد از یا زن Yeah <laughs> خواهد برد بلوش. اما یه مورد بردیتش بردیت حقیقی نیم این شایسته اینه مشخص موقع میتونه مقدم بشه میتونیم بعد مقتدره خبر بود بعد از مقتدر روز کرد خبر خبر از میشه یعنی نهی که واقعا هم حقیقی جوریه که اگر بعد یک کنش مقدم بشه غلطه. نه میتونه مقدم بشه جی نا از ای بیسه ای از هر عبد دارم هر گزاره نمیشه کمان زکر رو بکر این آخر بار محتده همونطور که این رو من برای توضیح کردم که این محتده واجبه لحظه در آخر بار محتده ها اینجا گفتم که این محتده واجبه گفتم چند جا محتده واجبه هست یکیش ای و این دو اتا مشعرندهی که ها چه مخصوصه دیگه نگفته من حب رو چرا که مشعه او اون در کلام هست برای میگه اگر موقعاً میشه مشعه به مخصوصه به مذهب ها یا مخصوصه به ما کبا به زمین زمیر, زمیر میخواه به مشعه این کبا مخبول داشته یه مخبولیه یعنی اقنا یعنی کبانا این ذکر مخصوص یعنی اقنانا این ذکر مخصوص به قریبتی شده حسوده. مثل ما بده کرد و ما قلا ما و ما اید. از نعمه ما ده در نعمه فل المرتقى یه چند تا یکی ده صفر مرتقى مختصر نعمه مولا با کرد چی شده میگه او به که چه خوب است عجب چی که از و عجب این چه چیز خوبی در پیدنگی کردن و در کس کردن خیلی از پروزن اما از ارمو مقدران و تنها در من محتفا از رو گفت اگر مشعب به مخصوص به مده در قبل چی میشه ما رو میکنه یک مخصوص یه مخصوص نره فاض اینجوری نعمت که ال اونطلا نعمت اونطلا قرارش نه وا بعدش مخصوص بیاریم مخصوص هر نمیرا اینا که مشکل این دوریه اگه این مثال مشکل در خود بشه چی؟ به طریق قبولا سرد در سرد دیگه این میکنه دیگه اینکه بخصی نداره کلقه او نه و مبتنه پس برای با این مثالش بهمون که یور و کلال مخصوص و بعدی منتقه هم این بردیتش اضافتا باید بر بیان ولی میتونه مقدم هم بشه اگه مقدم بشه دیگه مخصوص لازم نداریم نه این مقدم باید با. حالا ببینید چقدر درست میکنه. یه حوامیه بیرون که بخوره به مخصوصه به من یعنی ما بیریم مقدم یه زمیر داشته باشیم بخوره با به مخصوصه به من بعد مشعرات رفت از کارجا اون زمیر مجبور میشه یعنی زمیر منبسل کنه نسخبت کنه هم که زوجه کرد جنب یعنی اگر مقدم شود مخصوص اون یا مشعر اون یا مشعر مخصوص به من که خواهدت میکنن این بیمیاد میکنن این مشهد یا خود مخصوص ما از این مخصوص بعدش بعد از نعمت یه لازم نیست چلقه نه موقع و موقع مثال کدومه مثال مخصوصه. خودش خود موقت. این موقت داری موقت داری موقتن. موقتن به این یوقدر این موقع این موقع دار که یوقدر به بره شما که ماشقا به وجود داره کشار کدومه وجبنابه اون زمین روی که نو خوره در یوم بخص بخص ایوم بوده دیگه نمرحب یا دو